اگر ما برم این باز هم امی وضعیت خانونی اینجا برقرار بمانه امی این نظام به یک شکل تداوم پیدا بکنه بمی خاطر اونها قانون اساسی را اول تر جور کردن و بعدش قوانین دیگر اگر قوانین جزایی هستن قوانین مدنی هستن، قوانین مجتمع مدنی هست، قوانین متبوعات است قوانین تجارت است، قوانین اقتصادی است،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 دایم موضوع بحثر گرم میزنید کی قانون بنیادی اسلامی اس یا اگر اسلامی اس چرو قبولش نہ داریں بر خلاف یو می جنگیں چرو بے قانون تسلیم نہ اگر نہ اسلامی اس چرو نہ اسلامی اس اگر یہ قانون قانون, قانون قانون کفر اس از چی اس چرو یہ قانون قانون کفر اس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 نماز بخوانن، به حج برون، اجازه روز داشتن را داشته باشند ریش های خود را بمانن، لنگی سر کنن، بازم اون نظام اسلامی میشه و اون حکومت اسلامی میشه. اگر در هر قریا ده ها مسجد را بنا کنن، اون نظام اسلامی نمیشه و حکومت اسلامی نمیشه. چون مجتمع را، انسانها را که کسی تنظیم میکنه، و فیسله و حکم را که بر کدام اساس می او اسلامی نیست تا وقتی که تنظیم کننده جهت منظم جامعه اسلامی نباشه به مسلمان بودن باشندگان یک سرزمین نظام اسلامی نمی اگر ایتور می بود در لندن هم مردم نماز می در لندن هم مردم ریش دارند در لندن هم مردم مسجد بنامی کنند در امریکا مردم مسجد دارند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 بشی حاکم مسلم بشی قاضی مسلمان میرن و طبق حکم الله بینشون فیساله میکنه باز یکی از اینها ها چطور شده از کسی پرسانش میکنه چطور شد فیساله تن کد ولا یک چیزی کرد گفت یک چیزی چطور کنی مجبور دیگه قبولش کنی نمیشدی چاره نیست بنایم کافر میشه چرا؟ الله میفرمایه لا باز نمیابند در دلهای خود در نفسهای خود حرجن هیچ حرج هیچ تنگیه هیچ نارضایتیه باز نارضایتیه فی انفسیم حرجن مما قضایت از او فیسلی که تو در او قضا کرده در او حکم صادر کرده اگر نارضایتی هم در دل داشت بازه مسلمان نمیشه مسلمان نمیمانه اگر بگید یک کار شد دیده چطورش میتونی قبولش میکنم چاره نیست، بازم کافر میشه، با میگفته هم کافر میشه و يسلم تسلیما همه زمام امور زندگی خود را، همه هوا و هوس خود را، همه خواسته های خود را، تسلیم بد دینی الله کنن، با تسلیم مکمل، بشكل مکمل تسلیم که در این ما هیچ فرمایش ندارم، در این مورد تور که الله میگه امور قبول دارم، هیچ فرمایش از خود ندارم،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 آیات تقوه و آیات روزه قبول دارم آیات جهاد را منع می کنم و کسی که جهاد میکنه کنه او را ترسط می گونه در زندان میاندادم دوست پایش رو بسته می کنم میکنم کسی که با مومن دوستی میکنه کنه او را قبول دارم لگن کسی که با کافر دوشمنی می کنه او را می کشن. چرا با کافر دوشمنی میکنم؟ چرا کافر را دوست می تنی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 نافرمانی الله را بکنه رسولش را بکنه فقط ضل بلا لنا مبیننا گمراهی آشکار گمراه شده قرآن را الله نازل فرموده ای تنها کتاب تلاوت و کتاب برکات و دم و دعاو اخلاق نیست کی کتاب است که باید زندگی بشریت طبق احکامش عیار شود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 و زندگی قانونی را که دموکراسی برای مردم تلقین میکنه میگه چیزی را که مردم میخواه اکثرات مردم میخواه امو حق است را که اکثرات مردم نمیخواد او حق نیست اما اسلام میگه چیزی را که الله میخواه نازل فرموده امو حقست است که هیچ کس رو قبول نمی داشت باز از حق بودنش کاسته نمیشه امو حق هست. مردم قبولش دارن هم حق ندارن هم حق هست.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 هر چقدر مردم یک کار باطل را بخواهند اگر به میلیون ها مردم یک کار باطل را رای بتن که جایز شود روا شود و یک فرد بگوی کمی نارواست و یا یک فرد هم نگوید تنها امو دلیل ناطق بر ناروا بوده نمی کار باشد او کار روان نمیشد نباید مردم طابعیت اک رای اکثریت را بخواهند وشت هوا و هواس ولا ولا تتبع أهواءهم عما عم جاءك من الحق فايراو ما كن از آرزوها و ميلها اينها و ميلنكو ازو حكم كي برتو نازل شده بطرف آرزوها و ميلها و خواهشات اينها بري هر امتي از شما اك شرياتو اك خانوني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 واليوم الآخر اجر شما إيمان دارين بر الله وبروز آخرات أجر إيمان دارين إيه كار ربو كنين أجر إيه كار رنمي كنين شما إيمان ندارين دعوية دعوية دروغة دعويت ذلك خير وأحسن تأويله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 فحكم لتحكم بين الناس كيفي بين مردم بما أراك الله طبق أو الله بتو نشان داروه ولا تكن للخائنين خصيمان ومدافع خائنان ما باش آيات زيادية است كي نظريه حاكميت را نظريه قانون گزاري را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 قانون بانکداری و قانون و پیمان های اسکری و نظامی او استراتیجیک و عمليتی را که با کشورهای دیگر رعایت میکنن. آیا طبق گفته الله او طبق شریعت رسول الله اگر باشن، این نظام اسلامی. اگر طبق قوانین الله، طبق نظامی الله، طبق حکم الله، طبق حکم رسول الله نباشن، این نظام نظام اسلامی نیست، قانون قانون اسلامی نیست.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 اگر یک مادهش ناسلامی نا باشه لیکن امی یک مادهش جز امی قانون باشه جز لاینفکش باشه بخاطر امی یک ماده تمام قانون لااسلامی باشه مواد قانون اصاسی را سرش سر هر کدامش علاحده علاحده در روشنی آیات و حادیث و غفتهای علما اسلام سرش تبصیره می کنه مشاالله و می بینیم که در این قانون چقدر کفر را چقدر گمراهی را چقدر قوانون غربی را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 هزار حج بکنه هزار نماز بخوان هزار بار روزه بگیره، لیکن حاکمیت الله را نامپذیرره قانون الله را نامپذیرره قانون الله ناممانه اینجا حاکم شود اون نه شخص مسلمان شده میتونه نه نزار مسلمان شده می نه قانون قانون اسلامی شده میکن. دیگه مسئله تقلین و تشرية مسئله عقيب است مسئله اصلی ایمان است مسئله حاشیوی نیست.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 يك اله حق. اول نفيس. نفي اس. بعد باطل. بعدش اسباطي حقس. اول ما ميجي اول تخلياس باس تحلياس. اول نفس از آلهو تسوراتو نزرياتو عقائدو بندارهاي باطلة فاق ميكوني بعد ازو عقائد حق را قبول ميكوني وازو دفاع ميكوني.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 Of the people by the people for the people حکومت مردم از طرف مردم برای مردم جایگاه اله و دین و شریعت و واحد در اینجا کجاست؟ اصلا وجود نداره باز اسلام از تسلیم گرفته شده که تماماً هر چیز را به الله هو می گذاری هیچ استثناء و فرمایش را از خود داشتنه می باشه در حاله که دموکراسی مرجعش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 جائگای اصلی است. و نشعتALLY الله لا اله اولا ه اولا ه لبه. لا اله اولا ه هچ اله بغیر از اله حق نیست. هیچ قانون بغیر از قانون همی اоминаه را قبول نداره. هیچ فرمان بغیر از فرمان این اiedoه را قبول نداره. هیچ خاطرداری بغیر از خاطرداری این اоминаه را نمی کنه. نه از ملالمتهد پارلمان اروپایی را، نه از شورای امنیت را، نه از جامعه جهانی را، نه از عنعانات و رواجه ها و تقالید مردم را تمها چیز را که اللهم افره امور قبول میکنه امی معنی لا اله ایلالله و اصلا این معنی لا اله ایلالله شده نمیتونه که هم دموکراسی را میکنه هم اسلام را باز امو نفی و اثبات کجا را دیخو اردوش ثابت شد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 برایی که از مقاومت مردم جلوگیری کرده باشند و مردم را از از خیستن در مقابل اینها و جنگیدن در مقابل اینها منع کرده باشند اینها فورا قارنگذاری میکنند فلان کار جایز، فلان نجایز فلان قانونی، فلان غیر قانونی فلان کار و فلان چی، و بشه خلاف عذیر، خلاف, خلاف قانون است و کسی که خلاف قانون کار رمی کنه او مجرم است و مجرم سازازش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 این نبا دوباره, ای باید راجع دوباره اسلام می شود این نباد شود و دوباره به اسلام نباد حاکم اسلام در زندگی مردم حاکم شود نباید فیصله از اسلام باشند نباد فیصله از قرآن از آگز باشد نباد مردم به بهملله و عالم و منبر و محراب و مفتی رج بکنن مردم باید به با س حقوق بشر رجو بکنن مردم باید به با فارمان رج بکنن مردم باید به با وکی رجو بکنن مردم باید به با شورا و همبستگی میلی رجو بکنن مردم باید به با نماینده حکومت رج بکنن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 از طریق اهمی قوانین و تأثیرات اهمی قوانین از ذهن <مدلسان> مسلمان ها ایرا فرانوش میکنه ایرا میکشه از ذهن <مدلسان> مسلمان ها که مسلمان ها یک اومت استن و غربی ها یک اومت دیگری استن مسلمان ها یک تمدون دارن و اونها یک تمدون دیگری دارن مسلمان ها یک متجه اونه ها یک متجه اونه یک متجه اونها یک حل و حرمت، حرام بودن و حلالًا بودنُ اشیاء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 مسلمان ها کسی در ناتو شامل میشن. کسی در وارسا شامل میشه. هیچ مشکلی نیست عضو ناتو میشه. از طریق امی قوانین از مسلمان هایی را فراموش میکنند ذهنشان میکشه ای که مسلمان ها یک امت هستند اونها یک امت دیگری هستند بلکه عملا اینها را توری عیار میسازند که احساس دوگانگی را فراموش کنند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 قبول کرده. قانون اساسی امروزه افغانستان و امریکایی ها ساختن امزار از شهرانی گرفتن می که این شهرانی برشان قانون اساسی درست برند. نعمت الله شهرانی. شیخ است. عالم است. مولانی است. ازهری است. استاز است. معاون یک تنظیم جهادی. در حال که شهرانی به هیچ دخل و غرضی نیست دید. خطوط اصاسی همین قانون را رند کارپوریشن محسطه تحقیقاتی امریکا و نوع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 چه ن رول روله ردارن باید چه تعامول با اینها باید بشد اینها خطرناکتر از جنرال های اسکرری هستند قلم های اینها تاثیرش خطرنااکتر از میله های توپ های تانک هایشان است بعدش بازی میخوانم که توانیم اگر یک قسمتش اسلامی باشه یا قسمتش مع اسلامی آیا امیر علما اسلام اسلامی گفتن یا نه اسلامی گفتن میشه که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 أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله فيراك